مردم را از در خانه اهل بیت جدا کرد چون دیشب از کردم دنیا در خانه بنی امیه بود شاید دو تا مثال بزنم از قصه کربلا دنیا طلبی مردم بهتر جا میفته فرمانده لشکر عمر سعده تا روزهای آخر تردید داره دنیا رو انتخاب کنم یا آخرت رو مقاتلم نوشتن همه تا اون روز آخر با خودش زمزمه کرد که دنیا نقده به من استانداری ری تهران امروز با این سرزمین خرم وعده داده شده قطعی آخرت نسیه است و من نقد را به نسیه نمیفروشم. در برخی مقاتل آمده مردی با کاروان سید الشهدا بود حتی تا شب آشورا هم با حضرت بود یعنی این قدر قدر بود مرد بود اون شب که حضرت خود خواند که هر کس از تاریکی شب استفاده کنند برود من بیعت رو برداشتم این نرفت اون کنار سیدو تا صبح هم زمزمه میکرد روز اصحاب سیدو شهده صبح آشورا ول سیدو سیدالشهدا رو رفت رفت به سمت لشکر دشمن یعنی فرارم نکرد بیتفاوت باش گاهی اینجوری آقا جان بدتر و بالاتر از او قصه جماله صاربان یک عمر بلکنایتش گریه کردیم منو شما صاربان خادم سید و شهده بود شو کاروان کاروانسه سید و شهده بود خدمت میکرد معجزات آقا رو دیده بود خطبه های آقا رو شنیده بود تو این مسیر که دل سنگ رو آب میکنه صدای واقر بتای سید و شهده. اما وقتی رفت سمت دنیا به خاطر یک کمر بند وقتی آمد بالای بدن بیسر ابوالدلال حسین دست بر کمر آقا رو بدزدد دست راست حضرت آمد رو کمر دست آقا رو قطع کرد دوباره دست برد و کمر رو باز کنه دست چپ آقا آمد رو کمر دست چپ آقا رو قطع کرد من نمیخوام روزه بخانم میخوام بگم دنیا تلبی این بلار و سر آدم میاره همراه امام نوکر امام شتربان و ساربان خود لشکر امام حاضر میشه به خاطر دنیا دو دست از جنازه رو ببرد مردم اون روزوگار اینجوری بودن دیشبم عزم کردم هر کس در حد خودش و این امتحان سنت خداست بنای خدا بر این تمام ابناع بشر هم من هم شما رو یک بار حداقل و گاهی بارها امتحان خواهد کرد که ببینم اینا دنیا رو انتخاب میکنن یا آخرت رو مواظب باش من و شما هم تو این امتحانات میفتیم اما نکنه امتحام ما عمر صد بوده فقط منتا مردم یه چیز رو خیلی نفهمی کردن نفهمیدن که دنیاشون هم در خانه اهل بیت بود اگر می رفته. خدا برای این مردم دنیا رو هم خواسته بوده و بر آخرت که دنیاشون هم آباد باشه و او زمانی محقق می که عدالت برپا باشه عدالت هم در خانه امیر بود عدالت در خانه سید بود امده نفهمی این دنیا طلبان این بود که گمان میکردند اگر امیرالمومنین رو در قصیه صقیفه یاری کنند، بیارن سر کار نکنه دنیا مقراب میشه این مشکل توحیدی ها مشکل اعتقادی دیشب از کردم ضعیف و باشه این به خدا آدم بدگمان که خدا منو فقیر میخواد خدا تو این جامعه ظلم میخواد علیه آزو بالله عدالت نمیخواد که یه ده بخورن به یه د برسه به یه د نرسه این بدگمانیه نسبت به خداست راه این دنیای آباد هم از در خانه حکومت اهل بیت و ادالت اهل بیت میگذشت مردم اینم نفهمیدن حالا شد خانه اهل بیت شد دوران غیبت این دوران به انهای دیگر این امتحان پیش میاد من یه دوتا نمونه ارز کنم برای شما شاید به شنیدنش بیارزه حدود بیست و سه چهار سال پیش من توی یکی از دانشگاه های علوم پزشکی تدریس می‌کردم یه وقت مناسبت مذهبی بود جشن بود سیزده رجب نیمه شبان دانشگاه جشن گرفته بودن ما هم دعوت بودیم رفت. و جشنهای مدل دانشجویی رو از دان دانشجو میدونن دیگه اون مجری یه وقت اعلام کرد که دو تا دانشجو بیان بالا سن. من یه سوالاتی دارم الان میگن چالش به سوالات ما پاسخ بدن دو تا داوطلب. دو تا دانشجو رفتن تاان دیدم هر دوتا سر کلاس خودم من یکی دکتر خانوی بود دانشجوی پزشکی بود یکی آقا پسری بود پرستاری بود. دو تا سوال از اینا کردن سوال اصلی این بود اگر به شما الان خبر بدن که 48 ساعت از عمرتون باقی مونده. نه بیشتر. و شما مطمئن باشید این خبر از طرف خداست درسته. شما و 48 ساعت دیگه میمیرید. این 48 ساعت رو چکار میکنید؟ راستشو بگی. بگید. آقا پسر خیلی معدب و متین گفت خب توبه میکنم اول از گناهام. سعی میکنم حق و رو ادا کنم. حلالیت بگیرم. حق الله رو در حد اون دو سه روز دو روزی که وقت دارم ادا کنم و خودم را آماده کنم برای مک. خود دختر خانم شما بفرما چه میکنی خیلی قشنگ به قول شما ریلکس گفت این دو روز رو میرم پارک گردش سینما کنار دریا که دو روز آخر و عمرم خوش بگذره میفهمید یعنی چی؟ یعنی این آدم تربیت ذهنیش چوری بوده که چیزی به نام آخرت براش جدی نبود همه چی رو تو این دنیا تصور میکنه فکر میکنه که همه چیز اینجاست اون دو روز آخرشم هم چکار کنم خوش بگذاره دیگه. همه انسان خوش گذشتن و لذت دوست داره. دیگه نمیرفیم به فکرش به بهش کهقا خوشی اصلی هم بخوای اونجاست لذت اصلی هم بخوای اونجاست انسان تاجر تاجرسفتم باشه ببینید قرآن گاهی با این زبانم با ما صحبت میکنه. دنبال خوشییم هستید ول آخره تو خیرون. و ابقا اونجا که بهتره که اونجا که مندگارتره خب اینجا هشتاد سال، نوت سال اونجا که خالدین و فیها عبد و بدبخ آدم تاجر باشه دنبال لذت و خوشی و معاملات اینجوری هم باشه که آخرت رو واید طلب کنه لذت جاودان یا لذت شست ساله نفهمن اونایی که های دنیا را انتخاب میکنن لذت آخرت رو فراموش میکنن این ارز من مردم روزگار سیدو اینجوری بود حال و شد. این انتخاب در زندگی همه ما خواهد بود مرحوم علامه جعفری رو ازش بعد مرگش من دیدم منتشر شد از دو سه واسطه که ازش پرسیده بودن آقا این قدرت علمی این توان ذهن و تحلیل و کیاست و ذوق و حافظه از کجا شما به دست آوردی رمز و رازش چیه خب تو زندگی علما هست مثلا تو زندگی معروم شیخ انصاری بون اون عظمت شون گفته بود که من از خدمت به مادرم خدا این لطفو به من کرد تو دزفول اون زمان آیت الله شیخ مرتزا انصاری میگفت مادر پیرزن مادرم خودم کول میکردم میبردم هممام عمومی زنانه میستادم مادر پیرزن حمام رو بعد کولم میکردم میبردم خونه دیگه آ من مجتهدم من آیات الله هم مردم میبینم چه شهنم میاد پایین خدمت مادرمه خدام این مقام رو به من داد از علامه جعفری پرسده بودن از کجا گفته بود که من میگم به شرط که تا زنده ام منتشر نشید. بعد مرگم منتشر کنید. اون قصه شیم بود. ما نجف بودیم. اشغول طلبگی و درس و بحث. تابستان های گرم نجف فناه میبردیم به زیر زمین سرداب. در سام تعطیل بود رفقا گهده میکردن اصری مثلا یه آقایی هم بود تو این گهده های خودمونی مجلسگردان جلسه این علما بود میدانداری میکرد میانداری میکرد رفتیم زمان هوا گرم بود اصری تو این جلسه این آقام آمد سلام ال هاجدش شروع شد این آقا گفت که آقا او ماده 15 نفرم بودن امشب امروز میخوام یه سوالی بپرسم مرد مردانه درست جواب بدید وبلفضذلی آخون بازی در نیاری مقدس بازی در نیارید سوال منو قول میدید اونچه که تو دلتونه درست بگید کو از همه قول گرفت که راستشو خواهیم گفت. قول که گرفت از جیبش یه اکسی در آورد اینو از روزنامه بریدم اکس ملکه زیبایی جهان الان هم هست الان هم هر سال یک مثلا یورویژنی تو یکی از کشورهای اروپایی یا ترین زن دنیا رو انتخاب میکنن اسمشو میذارم ملکه زیبایی یا زن برتر سال از این چیز قول من از روزنامه بریدم سوالم اینه آخونبازی هم در نیارید اگر قرار باشه با خوشگیده ترین زن دنیا یک عمر بشه زن شما اونم از راه حلال نکاح عقد اینو دلتون میخواد یا یه لحظه تو این دنیا آقا امیر رو ملاقات کنید کدومش انتخاب میکنید از کدام امتحان پیش میاد بین انتخاب بره همه گفت این به اون نگاکه، اون به اون نگاه گفت از سمت را شروع کنید یا جواب دادن. نفر اول گفت والا امیر که ما لحظه مردنم میمیریم آخرتم که تو بهش کنار آقایم دیگه. حالا این خانومو ما نداریم فعلا اینو ما امتخاب میکنیم اونو که انشالله قیامت همه کنارش هستی. نفر دوم شبیه همین جواب نفر است. رو نفر ششم من بودم. بدنم افتاد به لرزه. گفتم شیخ میخوای چی کار کنی؟ یه امتحان برات، یه انتخابه. اوزام به هم ریخ از مجلس بلند شدم. رفتم جواب ندادم. رفتم تو وجودم مدرسه. گرم رفتم تو راپله نشستم. از صبحم بیدار یه لحظه چورتم بود تا همون پلله ها که نشسته بودم تو گرما دیدم یه مجلسیست مفصل. صدر مجلس پیغمبر اکرم نشستن کنارشو آقا امیر المومنیم. بعد برخی از علماء و بزرگان و اصحاب رو دیدم وارد مجلس شدم آقا منو از اون ته دیدم بلند شدن امیرم. آقا امیر بلند شدن آقوششونو باز کردن برای من. منو در آغوش گرفتم از خواب پریدم برگشتم به اون مجلس آخونده گفتم من جوابمو گرفتم منی که یک لحظه دیدن آقا رو بینا نفروختم همین امروز جوابشو گرفتم و از اون لحظه میکن حافظه من عوض شد ذهن من عوض شد جوال میفهمم خوب میفهمم در سر. به قول مرحوم کافی من خواستم داخل پارانتز استفاده تبلیغی رو باشم دوستان جوان امتحان فقط مال عمر سعد نیستا فقط مال ساربان نیستا ما هم امتحان میشیم کیا رو انتخاب میکنیم منطق امتحان شرایطی پیش میاد که عادی نیست الان از همه بپرسومم با آقا امیر المومنی. یه وقتی دیدی فروختیش به یه پستی فروختی ساکت شدی از ولایتش دفاع نکردی که اگر اینجا حرف بزنم پوستم ازم میگیرن ساکت شدم من آخون خون گرفتم که اینجا از امیر المومنی دفاع پاکت همو نمیدن سال بعد دعوت هم نمیدن این میشه فروختن امیر المومن. تا یه وقتم امتحان بزرگ میشه اصل امام رو میفروشن و فروختن کوفیان این به همین مقدار عامل دوم در تبیین وضع جامعه اسلامی اون روز بحث نفاق منافق بودن تلون رنگ به رنگ شدن هم به معنای اعتقادیش هم به معنای عملیش چون در بحث اعتقاد منافق در مقابل مؤمن دیگه من بارها گفتم منافق به اون مسلمانهایی گفته میشن که مؤمن نباشن مؤمنم یعنی شیعان امیر المؤمنی بنابراین بقیه مسلمان همه میشن منافق از تاریخ برمیاد زمان سید شهدا شیعه که اقلیت بوده او اقلیت هم با خصوص پدر ابن زیاد علیه الانالله شیعان رو میشناخت تیم شیعان رو بزرگان شیعان رو ساختار تشکیلاتی شیعان رو وقتی اومد سر کار دیگه حجر ابن عدی امر ابن همیق دیگران همه رو تاروندن و اینام تو کوفه مستقر اولا اعتقادی مردم منافقه. من دو جور منافقان. منافقان دو دسته شدن یه منافقانی که تو تیم عثمان و بنی امیه، یه منافقان نگاه کنید، یه منافقانی که تو تیم امیرالمومنینن، اما نه در مقابل ابوبکر و عمر، در مقابل بنی امیه میگن ما علی رو بهتر میدانیم این از بنی امیه بهتر است. اما کسی دست به ترکیب دوتای اولی نباید بزن کسی علیه اولی و دومی حرف نزنه اونا مقدس اما قرار باشه بین علی و معاویه انتخاب بکنیم ما علی رو انتخاب بکنیم قرار باشه بین حسین ابن علی و یزید رو انتخاب بکنیم ما حسین ابن علی رو انتخاب بکنیم درگیر همچون جامعه بودند اهل بید خیلی سخت خیلی سختی لذا من در محظر علما حسارت میکنم تا مدتها تقسیم بندی اینجوری بود فلانی علویه یا عثمانیه دوتای اولی رو کسی وارد هر ایمشون نمیشد که انها اینقدر این اولی و دومی رو برده بودن بالا اونا مشکل ندارن مشکل سر عثمان و علیست حالا بگو ببینم تو عثمانی هستی یا علوی هستی بعدها این کلمه شیع و سنی تو جامعه رایج بود مدتا رایج شد مدتا عثمانی و علوی میگفتن رضا شما راجب جناب زهیر زهیر ابن قین مثلا میشنوید که ایشون عثمانی بود یعنی در مقابل امیر او رو انتخاب میکن بعدها شد علوی اوموی علویان یک طرف اومویان یک طرف تو این تیپ جامعه منافق تازه طرفداران و خواهان سید و اینجور آدم های نام نویسندگانه به سید و شهده نوعاً اینجوری هست کردم اینا سر ابوبکر و عمر تعارف نداشتن اونا رو قبول داشتن حتی زمان خود امیر تو جنگ سفین امیرالمومنین به جنگ معاویه رفت. معناش اینه که اونایی که تو لشکر امیرالمومنینن معاویه رو قبول ندارن، بنی امیر رو قبول ندارن. علایق. اما امام صادق علیه السلام فرمود تو جنگ سفین لشکر جددم امیرالمومنین علیه السلام پنجاه هزار لشکر داشت. از این پنجاه هزار نفر تعدادی که آقا امیر المومنین اسلام السلام رو ولایتش رو و براعت از دشمنانش رو درست حسابی قبول داشته باشن او رو به عنوان حجت خدا فرمود به پنجاه نفر نمی رسی. از پنجاه هزار پنجاه نفر یعنی یک هزارومه لشکر امیرالمومنین المومنی بودن که شما امروز میتونید توانید اسمشو بذارید این ولایتی برایتیه بقیه امیر رو به عنوان خلیفه چارم قبول داشته می گفتن خلیفه چارم ماویه نیست علیه اولی و دوبومی هم سرشون حرف نزنید حالا رو اسمایی حرف هایی داریم بعد جا می گفتن این آدم بدی شد و خلان شد و خرد و برد و تبعیض قائل شد و به طلمان رو بالا کشید و می حرف سر عثمان بود همین فرهنگ منتقل شده به یه نسل بعدی چند سال بالاتر سال چهل اجری؟ سال شسته وضعیت مردم اینجوریه وضعیت کوفه اینجوریه مردمی که با حضرت مسلم بیعت کردن مشهور تاریخ هیجده نفر این تیپ آدم بودند بودن اکثریت شد مردمی که به سید نامه نوشتن حسین بیا کربلا بیا کوفه این تیپ آدم بودن شما گمان نکنید همشون شیعان با باورهای دقیق ولایتی برایتی نبودن میگفتن ما معاویه رو نمخوایم تو رو مخوایم یزید رو نمخوایم تو رو مخوایم انتخاب بین این دو تا تیف و عزیزان من باز من استفاده تبلیغیم رو بکنم خیلی سردر بسته و سر بسته یه امتحان برای من و شما هم هست دا من و شما سنی نمیشیم اما بخشی از نفاق بین ماها هم هست یعنی میاد به سراغ آدم کسی رو شریک چارده معصوم میکنی یا نمی کنی؟ غیر معصوم رو ردیف معصوم قرار میدهی یا نمیدهی یک جمله دیگه هم کنم و روزمو رو بخوانم یه تیف دیگری بودن به نام متحیرین مرددین سرگردانها ها گیج ها اونایی که نمیفهمیدن نمیتونیم تشخیص بدیم موندیم این ورقه یا اون ورقه موندیم دینی هست یا دینی نیست موندیم بریم کربلا یا نریم کربلا و دقت بکنید به لحاظ جامعه شناختی و حتی به لحاظ تاریخی هم نگاه بکنید این تیپ آدمها ها هیچ وقت سمت جبهه حق نمیان یا میرن سمت جبهه باطل یا میرن سمت بیتفاوتا یه قرینم برای همین ارز بکنم مقاتل نوشتن متعددم نوشتن این روزها که من براتون عرض میکنم مثلا هر روز چند هزار نفر لشکر وارد کربلا میشه اضافه میشه به لشکر و مرسد نوشتن آقا از هر هزار نفر دقت از هر هزار نفری که از کوفه حرکت میکردن برن قاطی لشکر و مرسد بشن 300-400 نفر به کربلا میرسیدن بالای پنجاه درصدشون تو راه فرار میکردن شبانه قایم میشدن چون نمیتونستن تصمیم بگیرن متحیر بودن مطمئن نبودن که راهی که دارم میرم برای کشتن سید و درست باش از اونورم این اینقدر ایمان نداشتن که خب پس حق با سید و شهده بریم اون ورن. نه قایم بشی فرار کن جیم بشی از هر هزار نفر نوشتن سی ست, ست نفرشون به کربلا می رسیدن. نصف بیشترشون تو بین راه کوفه و کربلا فرار می کردن. از لشکری که بودن کاروانی که بوده. و امروز جوانها عزیزان نمیدونم منو شما وظیفه دم. امروز این تیف جوان تو جامعه ایران شیعه ما رو به افزایش درصد قابل توجهی از جوان های ما میگم جوان ها با اینکه تو سنهای بالاتر هم هست کمتر تر متحیرن بیدین نیستن بادین هم نیستن متحیرن امام و باشم نباشی متحیرن امام ها راست میگن اینا این علم غیب رو داشتن یا نداشتن ای اسمتی که میگن دارن یا ندارن نماز هست خوبه یا نه خانمه هنوز کی رو کیجن خوبه یا نه سر کنم یا نکنم این تیف متحیر سرگردان امروز داره تو جامعه ما رو به افزایشه من و شما وظیفه داریم شب جمعه صلی الله علیک یا ابا الله بریم در خانه یادگاره امام حسن مجتبا قاسم ابن الحسن منطقه برای دلها آماده بشه دو سه کلمه من روزه بخوانم، دو سه تا نکتر عرض بکنم برخی از زوقیات آقا حرفای خوبیه حرف زوقیه ولی به دل آدم میشینه با مبناس برخی از بزرگان ارباب مقاتل دیدم اینجوری نوشتن نوشتن تو چربلا آل عبا هر کدام یه شبیهی داشتن عشبه و ناس به پیغمبر جناب علی اکبر بود اشبه بهون ناس به امیر المؤمنین آقا حضرت عبالفز بود اشبه بهون ناس به بیبی دو عالم حضرت زهرا زینب کبرا بود و اش بهون ناس به امام حسن مجتبا قاسم ابن الحسن شانی مردم رو میدیدن اهل بیت به یاد امام مصن مجتبا می می‌آوردن یادگارش بود شبیهش بود نازدانه بود با ادب بود لذا مرگ قاسم و شهادت قاسم برای اهل بیت خیلی سخت بود برای سید الشهدا خیلی سخت بود نکشته دوم که مقدمه روزه همه روزای عزت قاسمه شب آشورا وقت سیدالشهدا فرمود هر کس بمانت فردا کشته میشه فردا زندهی نخواهیم داشت در این جمع از کرد امو انفی من یکتر منم بین شهده فردا خواهم بود فرمود که پسر برادر مرگ تو چشم چجوریه از کدمو جان اهلا من اصل؟ این رو چه شنید سید فرمود قاسم انتفی من یقتل شما همجز شهدای فردا اما یه جمله فرمود دل شما را آتش انتفی من یقتل تو هم فردا شهید میشی اما بعد انتبلو و به این عظیم تو با بقیه شهده فرقی داری. تو بعد از این شهید میشی که به یه بلای بزرگی مفتلا میشی گرفتار میشه. فرمود قاسم جان نه تنها تو این طفل شیرخارم هم میکشن. پرسید امو جان یعنی لشکر میان تو خیمه ها آدم میکشن. فرمود اون لحظه ای که طفلمو گرفتم بالای دست برای ودا اون لحظه با تیر گلوش و پاره پاره میکن. همه گریه کردن قاسم ابن الحسن هم گریه کرد تا رسید فردای آشورا آمد برای اجازه گرفتن اینارو رو میگم بسوزی ما این همه تو عمرمون روزه شنیدیم منو شما ودای همه شهدارم شنیدیم تو روزه ها فقط یک ودا داره سیود موقع ودا قش کرد افتاد و اون وداع قاسم ابن الحسن سید شهداد تو وداع هیچ شهیدی حتی علی اکبر قش نکرد. جلوی عمو اجازه میدان خب قاسم جهاد براش واجب نبود کان لم یبلغ الهلوم به سن شرعی نرسیده بود به سن تکلیف سید الشهدا اجازه نمیداد انقدر التماس آخر افتاد به پاهای عمو جان. با دل عمو بازی کرد. خوب ترخ برقی از مقاتل بازوبندشو نشون داد و یادگار امام حسن و وصیتو راضی کرد او رو. او تیکه دیگری که دل آدم رو آتش می‌زنه خیلی‌ها این حرفا نمی‌فهمند. ما شما می‌فهمید. امید ابن مسلمه میگه که دیدم یه جوانی خرج غلامون یه نوجوانی خارج شد کان وجه و شقت القمر این قدر زیبا بود این قدر زیبا بود مثل پاره ما ولزا مثلا منتخب و نوشته شاید به همین دلیل بود سید و امامه جناب قاسم و دو تیکه کرد یه تیککش شو جلو صورتش بیچون صورت قاسم دیدنش دشمن اگر این زیبایی رو ببینه انتقام دیگری از علی ابن تالب میگیره آمد میدان انتونکرونی و ابن الحسن سبت نبی المصطفل معتمن خودش رو معرفی کسی و پنی نفر رو بخواه که مذلت انداخت نوشتن تو میان اونها پهلوانی بود حریف هزار مرد جنگی خونه امام حسن تو رگاشه تو جنگ جمل تا نرف قائله تمام نشد سقدر مظلوم امام حسن اولادشم مظلومه امشب خوب گریه کنیم برای پسر امام حسن امشب دل امام رو به دست بیاریم حمید ابن مسلم میگه کنار دستم یکی از فرمانده های لشکر استاده بود گفت داغ اینو به دل مادرش میذارم گفتم این جوان اگر به جنگ من میاد من با او نمی جنگم پسر پیغمبره به سن تکلیفی ها تو مخواید کفت نه من داغشو به دل مادرش میذارم از پشت حمله می. ناجوان مردانه نیزه زد سر نیزه از سینه از سینه بیرون آمد. صاحب منتقب و نوشته اینقدر این مصیبه سوزناکه شاید بعدا تبلو و به بلائن عظیم همین باشی قاسم افتاد روی زمین از مرکب با اما ادرکی امو به فریادم برست اما خیلی نوشتن اون بلای عظیم این بود تنها شهید کربلا که زنده زنده خاک برده <تصفيق> بدنش زیر سومه از ما قرار گرفت بدن قاسم بن الحسن بود یک گرد و پا شد سید و شهده تا بیاد تا لشگر رو کنار بزنه بدن قاسم رو روی سینه بگیره این بدن قاسم زیر سومه از ما کشیده بود سر قاسم و روی زانو گرفت تو جمله روزه خون روزه امام باید خیلی دل من و شما رو آتیش بزنه آتفی روزه خون الله علا امک قاسم جان برای با عمود خیلی سنگین تمام شد چی ها عبد الله تو همه و شهید دادی نه قاسم یه فرقی مه. قاسم منو به فریادش خال قاسم منو به کمک طلبی عذرا الله على امك ان تدعو فلا يجيبك منو به فریادت خاندی نتونستم به فریادت برسم قاسم این برا من خیلی زنگینه او یجیب وک که یان فوت مو که رسیدم قاسم کار از کار گذشته بود دیگه نتونستم از زیر سوماس با بدن رجم کنم میگه دیدم به این بدن رو به سینه بود. قاسم یک پاش دراز میکد، یه پا رو جمع میکد، اینقدر اینجان دادن. برای ابا عبدالله الحسین سنگین تمام شد. ای نگاه میکنم حسین با این بدن چه میکند؟ دیدم بدن رو به سینه چزبون، اما پاهای قاسم رو زمین کشیده میشه. خدای قاسم اینقدر قد بلند نبود. هر شهید رو حسین به سینه بدن رو بغل میکر رو هوا میبود کنار بدن شهدا. اما بدن قاسم چی شده پا روی زمین کشیده می شود دکت کردم به دیدم آیا آخرین جمله من زیر از با این بدن اینقدر شده بدن قاسم قد کشیده بدن قاسم خدایا با لحظه ی سید و شهدا قسمت می اجل ولی ولی کلفرد اجل امام المظلوم الفرد أجل سيدنا الغريب المهموم الفرد.